مرت دوست ها وارد پزشکی قانونی که میشدم دو نفر دو سر بستهگیر بزرگی را گرفته بودند و با خودشان بیرون میبردند. نمیشد حد زد توی بسته چیست؟ اما سنگین بود به نظر میرسید خیلی عجله دارند. ماشینی دوبله جلوی پزشکی قانونی پارک کرده بود و در صندوق عقبش باز بود. بسته را توی صندوق عقب گذاشتند و درش را بستند و به راه افتادند. طوری با عجله گازش را گرفتند که غیژ و ویژ چرخهای عقب درآمد یک خورده کنجکاف شده بودم بدانم توی بسته چه بوده تقریبا دیگر وقت بیرون بردن محموله از پزشکی قانونی گذشته بود اما آنها حتما دلیلی داشتند که این وقت شب این کار را میکردند به پزشکی قانونی برگشته بودم و به دنبال پاچوبی میگشتم اما پیداش نمیکردم نه تو اتاق کالبات کافی بود و طبقه پایین تو سردخانه با جنازه های محبوبش دوباره به سالن جلویی برگشتم و دیدم پاچوبی دارد از در میآید تو پاکتی دستش بود چوب پا, چوب پا به سمت من آمد گفت خب چشمانم به جمال شما روشن چی شد دوباره برگشتی دنبال پارتنری میگردی که رقصش به بدی خودت باشه خب داریم رقص مرده ها تقریبا به بدی رقص خودت خصوصی این شوخی بود که پاچوبی خوش داشت دوباره و صد باره بکند یک وقتی دو نفری با دوتا دختر توند نویس قرار و مدار گذاشته بودیم برویم رقص من همیشه رقصم افتضاح بوده به نظر او که تماشای تلاش من برای رقصیدن با یک دختر سرخه کودن واقعا بامزه بوده پاچوبی خودش رقاص معرکه است. همیشه مردم را محبوت میکند اقرب هزار توی سالن همه رقص خودشان را فراموش می کنند و به تماشای رقص او ایستند. برایشان باور نکردنی است. من که میرقصم هیچ کس به فلانشم نیست. مردم حتی جدا پیشنهاد کنند پارچوبی کارگاه رقصی مثل کارگاه آرتور ماریت تأسیس کند. دوست داشتم کارگاهش را ببینم. سعی کردم بحث را از قضیه رقص منحرف کنم، گفتم: "تون پاکت چی داری؟" گفت: یه ساندویچ که هیچ چیش به تو نمیرسه شام خودمه بگذریم. اینجا چه میکنی خصوصی؟ اومدی از و اون پنجا چوبی رو که به دهکاری پس بدی؟ واقعا امیدوارم قضیه این باشه اما چشم آب نمیخوره گفتم نه من یه پیشنهاد کاری برات دارم پاچوبی گفت تو مفلستر از اونی که پیشنهاد کاری داشته باشی خب حالا بگو واقعا چی میخوای. گفتم شوخی نمیکنم. من یه پیشنهاد جدی دارم و یه خورده پولم برای محکم کاری گفت پول؟ تو؟ آره دوره بدشانسیم سر اومده حالا تو سیر سعودیم هیچی نمیتونه جلو دارم بشه من میدونم اینا آراغ بعد مستی نیست چون تو اهلش نیستی خصوصی پس حالا بهتر حوش و حواست سر جشن باشه خدای من اول پر و حالا یه پیشنهاد کاری از طرف تو. بعدش چی میخواد بشه؟ بیا بریم دفتر منو راجع بهش صحبت کنیم. اما بهتر سر به سر من نذاری چون اگه این کارو بکنی دودش به چش خودت میره. دفتر پاچوبی در واقع یک میز تو اتاق کار بوت کافی بود. پاچوبی ترافرز با ساق چوبیش راه افتاد و من پشت سر او. هو یاد آن دو نفر افتادم که آن بسته را بیرون میبردند. گفتم هی hey, تو اینجا معمولی داشتی که چند دقیقه قبل برده باشم بیرون؟ پاچوبی گفت: منظورت چیه؟ دو نفر داشتن یه بسته سنگین و از اینجا می بردن بیرون. نه چی قرار نبود چیزیو از اینجا ببره بیرون. واسه ارسال و محموله الان دیگه خیلی دیره. گمونم به حوضه استفحاضیه سانفرانسیسکو دست برد زدن. من نمیدونم اونا چی از اینجا بردن. از پزشکی قانونی چه کوفتی میشه دستید اینجا ما فقط یه جنس داریم. میخوام بگم اینجا که بقالی نیست. این را که گفت دیگر حرفی نزد خیلی جدی به من نگاه کرد بچانش را و آهی کشید و گفت همونطور که گفتم اینجا فقط یه چیز پیدا میشه و گمونم حالا احتمالا یکی از اون چیزا کم شده به فکر فرو رفتم گفتم تو هم داری به همون چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم؟ گفت اره مرد دزدا؟ سرد بیحساس. با پاچوبی به دفترش اتاق کار چه کافی رفتیم. وارد که شدیم پاچوبی چند لحظه مقابل یک یختان مخصوص مردهها ها که توی دیوار کار گذاشته شده بود ایستاد. یختان در واقع یخچالکی بود که البته جای کافی برای چهار تا جسد را داشت. باقی جنازه ها را طبقه پایین در سالن هوای سرد نگهداری میکردند. جنازه های طبقه بالا خاص بودند. نمیدانم خاص بودنشان از چه بابت بود هیچ وقتم سوال نکردم اهمیتی برام نداشت فکر کردم پاچوبی میخواهد یخچال را چک کند ببیند کسی گم شده یا نه اما در عوض رفت و پشت میزش نشست و ساندویچش را از توی پاکت درآورد به قوری قهوه اشاره کرد که روی اجاق رومیزی کنار دستش بود گفت یه فنجون برا خودت بیار و بعد به ظرف شوی کاربد شکافی که چندتا فنجان کنارش بود اشاره کرد گفت برای خودت که میریزی برای منم بریز من میخوام ساندویچ تا سرد نشده بخورم همه که داشتم به سمت زرفشوی میرفتم تا فنجان بیاورم گفتم جسد گم شده چی میشه؟ گفت تا ساندویچ من سرد نشده میتونه به راه خودش ادامه بده من ساندویچ گرم نگرفتم که سرد بخورم میفهمی که منظورم چیه؟ گفتم آره میفهمم فقط موندم که کی ممکنه بخواد یه جسد از پزشکی قانونی بدزده؟ پاچوبی همانطور که ساندویچ ژانبون بیکن و کاهو و گوجه فرنگی همان قدیمی قدیمیش را میخورد گفت گفتم که بهت کلمات مخلوط با ساندویچ از دهنش در میآمد با این حال هنوز میتوانستم بفهمم چه میگوید گفت مرد دزدا ولی لعنتیا چرا نمیرن از قبرستون بلند کنم؟ چرا از جسدهای من میخوان گفتم شاید تازه شو میخوان نمیخوان مونده باشه گفت به جورایی منطقی به نظر میرسه گمونم دو فنجان از قهوه پاچو بیریختم و از مال خودم جرعی سر کشیدم مایه مربوطه به جهاز چشایی که رسید روتارش کردم خوردن قهوهش همان اثری را داشت که خوردن چوب بیسبال تو دهن آدم گفتم تو با این قهوه میتونی مرده ها رو زنده کنی؟ پاچوبی گفت فکر نکن خودم بهش فکر نکردم مخصوصا وقتی چشم به اون نشمه کوچولوی افتاد که امروز صبح آوردنش گفتم همونی که دیوونش شده بودی؟ گفت من دیوونش نشده بودم نمیدونم این فکر را از کجا به کلت افتاده فقط میتونی بگی که من عاشق بدن آدمام از خط تا خطوت و تره خط و, تر و نقششون خوش هم میاد گفتم اینجوری هم میشه ما سرارمت کرد از دید من که عوضات بود که انگار پنج ثانیه دیگه میپری روش پاچوبی با عوض کردن موضوعی صحبت گفت هی hey, تو باز بر چی سرکرلت اینجا پیدا شده؟ گفتم که من یه پیشنهاد کاری برات دارم میتونی یه پولی به جیب بزنی؟ منظورت از یه پولی به جیب بزنی چیه؟ تو همین حالاش یه پولی به من بده کاری؟ تو صاف کنی؟ این پولیه که من مایلم راجع بهش بشنوم گفتم همین حالا صافش میکنم و دست کردم توی جیبم میدانستم که اگر بخواهم معامله را جوش بدهم اول باید حسابم را با او صاف کنم گفتم اینم یه صد تا این. از این قسمت خیلی خوشم میاد حالا تویی که یه پولی به من بدهکاری نگهبان مردگان پاچوبی باورش نمیشد یک اسکناس صد دلاری تو دست اره کردهش باشد. طاری به اسکناس خیره مانده بود که انگار معجزه اتفاق افتاده. یکو یک پاچوبی شاد و شنگول شده بود. گفت: حتما واقعیت. نمیتونه توهم باشه. چون میتونم تو دستم حسش کنم. پیشنهاد کاری چیه؟ از اینو بازم میخوام. خوب میدونم کجا خرجشون کنم. گفتم 200 دلار دیگه هم از همینجا گیرت میاد. گفت زنده بعد چی کار باز گفتم تو یه ماشین داری نه؟ گفت آره یه پلیموس قدیمیه تو که خودت دیدیش حالا چی میپرسی؟ گفتم میخوام ازت قرض بگیرم مال خود ترفیق قدیمی دوی دیگه کجاست؟ این آسون ترین پولیه که تا حالا گیرم اومده چیزی که من میخوام فقط همین نیست یه چیز دیگه هم هست میخوام بذارمش تو صندوق اقب کمکت میکنم سدیا کجان گفتم نمیخوای بدونی باید کمک کنی که چی رو تو صندوق عقب بذارم گفت وقتی پای دویست دلار در میون باشه دیگه برا مهم نیست که تو چی رو میخوای تو صندوق عقب بذاری کمکت میکنم من در خدمتم کجاست پاچوبی با خوشحالی به صد دلاری تو دستش زر زده بود گفتم همینجا، سرش رو بالا آورد و گفت، چی؟ گفتم، چیزی که من میخوام بذارم تو صندوق اقب، همینجا پیش خودته، پاچوبی مبهوت به نظر میرسید، توی ذهنش داشت موضوع را سباک زنگین میکرد، زیاد طولش نداد، میدیدم که ذهنش دارد به چیزی که من میخواستم نزدیک میشود، بعد به اصل قضیه پی برد، گفت، چه گندی داره بالا میاد؟ تا که تو کلت همو چیزی نیست که من فکر میکنم تو کلته نه دوتا تا توی یه شب نمیشه بگو که اشتباه زدم گفتم درست حد زدی دنیای عجیبیه من عجیر شدم یه جنازه را بدزدم و جنازه ای که طرفام میخوان اینجا بیش توه پاچوبی گفت آنا جنازه برای چیشونه گفتم حد میزنم برای اینکه که بی صاحبه. نمیدونم این به خودشون مربوطه و تا وقتی کاغزای سبز کف دستم چشمک میزنن این اهمیتی برام نداره تو هنوزم چش دنبال اون 200 هست قطعا خب مهم نیست امروز یه جسد ازم کش رفتن و یه سنتم بابتش بهم ندادن با یه تشکر خوشک خالی هم نکردن جواب پس دادن بابت گم کردن دو جسد سختتر از یه جسد نیست من در خدمتتون اون 200 رو رو, رو کنم و بعدش هر کدومو خواستی بردار دویست دلار را به او دادم پاچوبی به وحشت آمده بود با همان دستی که پول را گرفته بود دایرهی بزرگی تو هوا رزم می کرد گفت هر کدومو که میخوای بردار هر کدومو میخوای بردار هر کدومو خواستی مال خودت گفتم می اما باید ماجرای آشقانتو خاتمه بدم امیدوارم دلتون اشکسته باشم به هر حال یکی دیگه میاد که جاشو بگیره. زن همیشه در حال مردنن پاچوبی گفت او نه او نه اون عزیز دردونه منه گفتم متاسفم رفیق پاچوبی سری تکان داد و گفت میارمش برات گفتم شگف زدم کردی عزیز دل تو میفروشی به پول سرد بیه احساس چطور میتونی این کارو بکنی پاچوبی گفت خیلی آسون اونم سرد و احساسه اونم دیگه دل نداره تو که رفتی یک کالبا چکا ویروش انجام شد و قلبشو در آوردن زمان دوای همه درد هست. پاچوبی ساندویچ خوردنش را تمام کرد گفت بیا بریم جنازتو بردار هیچ خوش ندارم شاهد رفتنش باشم اون زیبا ترین جسدی بود که این سالا داشتم گفتم فرموشش میکنی زمان دوای همه دردهاست زمان نه اون دی دلار گفتم کجاست؟ وانمود کردم که خودم نمیدانم دلیلش بماند پاچوبی به یخچال چهار جسدی اتاق کالبوت شکافی اشاره کرد و گفت: بالا سمت چپ رفتم سمت یخچال در قسمت بالا سمت چپ را باز کردم. و داشتم چفی را بیرون میکشیدم که پاچوبی گفت: « نه بالا سمت راست یادم رفته بود. جا جاش کردم. بالا سمت راسته گفتم معلومه اینکه خالیه. میخواستم از پاچوبی سوال کنم که خودش پیشرسی کرد و گفت. چطور؟ به سمت یخچال آمد یه جسد با این تو باشه؟ خودم چند سال قبل جسد رو این تو گذاشتم چه گندی داره بالا میاد؟ طوری تو یخچال را انداز برانداز می کرد که انگار جسد آن قایم شده و او میخواهد پیداش کند لعنتی! وقتی رفتم ساندویچ بگیرم جسد یه مطلقه اینجا بود و حالا نیست امروز از خودشو کشته بود چه بیده بوده تو فر و شیر گاز و باز کرده بوده؟ یعنی کجا رفته؟ آخه اون که مرده بود گفتم این دیگه مشکل توه من دیویس دلار بابت لشه فاحشه فاهشه به تو دادم و حالام همونو میخوام اون این بالا سمت چپ بود آره؟ تو پاچو پاچوبی گفت آره؟ سری به نشانهی از بابت از دست دادن جسد آن زن متعلقه تکان داد اون یکی همین بالاست کفی رو بیرون کشید شمد روی جسد را رو کنار زد جنازه آنجا بود. پاچوبی گفت: نگاه کن. دویست دلار میارزه اما اون جسد دیگه کدوم گوری رفته؟ دو ساعت پیش هم اینجا بود. حالا نیست. چه اتفاقی تو این خراب شده داره یک یکو چیزی به ذهنم رسید. خدا را شکر درباره بابل نبود. گفتم: یه لحظه صبر کن. سر هرچی بگی شرط میبندم این همون جسدی بوده که اون دو نفر یه ساعت پیش از اینجا داشت دیدن. پاچوبی گفت: اونم حق با تو باشه خصوصی حق با این تنها اتفاقی که میتونه افتاده باشه اونا جسد او متعلق را بلند کردن کی ممکنه اون جسد و بخواد او واقعا بیریخت بود یه الكلی آسپاس من که نمیدونم کی ممکن اونو بخواد پا افتضاح بود به نظر من که با خودکشیش لطف بزرگی هم در حق خودش و هم در حق همه دنیا کرد با چرا به نظرم جالب توجه آمد فراتر از اون چیزی بود که ظاهران به نظر می رسید شک کرده بودم نکند آن دو نفر جسد را اشتباهی دستیدند شاید جسدی که می بدستند به همان جسدی بوده که من دنبالش بودم قضیه داشت پیچیده تر می شد. شاید قضیه به همان سادگی که در ابتدا به نظر می رسید نبود ناگهان حسابی خوشحال شدم که هفتی توی جیب دارم که تیر هم دارد که می دارد؟ اصل ممکن است یک وقتی به کار بیاید. خب، شب بود و چه بسا شب درازی در پیش بود و باید حسابی حواسم را جمع میکردم. اولین کاری که باید میکردم برداشتن و بیرون بردن جسدی بود که بابت بلند کردنش پول داده بودم. آن دو نفر وقتی بفهمند جسد اشتباهی را بلند کردهاند ممکن است برگردند تا جسد مورد نظر را پیدا کنند و شاید؟ رفتارشان خیلی هم معدبانه نباشد شوی چکبنی گفتم حالا بیا این ضعیفه را از اینجا ببریم بیرون پاچوبی گفت گوش گوشکا خصوصی راجب اون اینجوری صحبت نکن اونم بیشتر از تو خوش نداشته بمیره حالی ته؟ کفر پاچوبی را درآورده بودم گفتم متاسفم گویین که اصلا متاسف نبودم فقط میخواستم دنبال کارم را بگیرم پاچوبی که آرام شده بود گفت میرم یه چیزی پیدا کنم اونو بذاریم توش گفتم ماشینت کچه گفت اون خیابون پارگش کردم. همیشه اون خیابون پارک میکنم کنم چوب پاچوب پا رفت و در کمدی را باز کرد آنجا یک آلم رخت چرک ها کنار یک کیسه پر رخت چرک ترنبار شده بود پاچوبی گفت لعنتی هرومزاده ها کیسه رخت چرک دزدیدن و در کیسه دیگری را باز کرد و محتویاتش را روی تل قبلی رخت ها خالی کرد و گفت این یعنی که اونا دوتا چیز دزدیدن به هر حال من میخوام این قضیه رو به پلیس بگم. البته بعد از اینکه تو مشت تو فکم بزنید تا بتونم توجیه قابل قبولی برای ماجرا داشته باشم. به اونا میگم دو تا دوست به یخچال شبیه شبیخون زدن. من حسابی باشون درگیر شدم اما اونا دختم آوردن. شاید حتی مدال هم بهم به بدن و شهردار دستای سرد منو به گرمی بفشاره. جسد فاهشه جوان جوانو توی کیسه گذاشتی پاچوبی بسته‌بندی جسد را به نحو احسن انجام داد. گفتم خیلی واردی پاچوبی گفت باید باشم پارسان به خاطر ده هزار جسد که از زیر دستم رد شده یه ساعت طلا گیرم اومد قبل از اینکه بندهای سر کیسه را بکشد سر فاحشه را نوازه کرد و گفت خداحافظ عزیزم درم مرا تنگ میشه گفتم نگران نباش بدن خودت بهش ملحق میشی پاچوبی گفت خیلی بامسته تو باس میرفتی تو شوی جک بنی توفهه های اوکلندی پاچوبی جسد را توی ماشینش بگذاریم جسد را که با خود ما می بردیم من لبخند لب بودم پاچوبی با تعجب نگاهم کرد و گفت قضیه چیه؟ گفتم فقط داشتم فکر می کردم قطعا جسدهای زیادی رو تو کیسه رخ و از اینجا بیرون می برن. با همین سرعت ادامه بدی آخر هفته دیگه هیچ جسدی تو دست و والد نمی مونه و برای حفظ آبروی پزشکی قانونی یه شهر بزرگ مجبور می شی از اکلن جنازه گرس کدی <تصفح> گفت کاش ازت نپرسیده بودم حالا وسط خیابان رسیده بودیم و دوسر جسد هم تو دست ما دوتا بود به ماشین که رسیدیم پاچوبی صندوق عقب را باز کرد و جسد گذاشتیم گذاشتیمان تو پاچوبی در صندوق عقب را بست کلیدها را به من داد و گفت هی هفتیرم چی میشه کی میخوای پسم بدی با این همه جسد دست که دورو برای این خراب شده پرسه میزنن مثل همین دوستا که خودت دیدی من اصلا همو لازم دارم نمیدونم اونجا دیگه چه بلایی ممکنه نازل شه؟ با سر به پزشکی قانونی اشاره کرد که به سرعت داشت از جسد و جنازه خالی میشد. گفتم، هفتیرم بذار پای همون دی تا فردا با ماشینت پس میارم. گفت، تو معامله رو خیلی می میخوای جسد تو جسدت رو پس بدم؟ نوچ. گفتم، تو همیشه در مورد خانومای متشخص خیلی دم دمی مزاجی. مطمئنی که نمیخوای پس بگیریش. پاچوبی گفت مال تو من دویست دلار رو می دارم می رم زندشو می راه افتاد که از خیابان رد شود اما وسط راه به پاهاش که یکی اش چوبی بود ایستاد گفت ای فراموش کردی تو فکم بزنی توجیه من یادتی که گفتم البته فکتو بیار اینجا مشتی توی فکش زدم سرش ده سانتی عقب برید گفتم ردیفه در حالی که فکش را میمالید گفت آره ردیفه ممنون خصوصی حرفشم نزن پاچوبی چوب پاچوب پا به پزشکی قانونی برگشت